حکایت. یکی را دل از دست رفته بود و ترک جان کرده و متمه نظرش جایی خطرناک و مزنه حلاک. نه که مصور شدی که به کام یا مرقی که به دام افتد. چو در چشم شاهد نیاید زرت، زروخاک یک یکسان نماید برد. باری به نصیحتش گفتند، از این خیار محال تجنب کن که خلقی هم بدین هوس که تو داری اسیرند و پای در زنجیر بنالید و گفت دوستان گو نصیحتم نکنید که مرا دیده بر ارادت اوست جنگ جویان به زور پنج و کتف دشمنان را کشند و خوبان دوست. شرط مودت نباشد به اندیشه جان دل از مهر جانان برگرفتن. تو که در بند فیشتن باشی، باز دروغ زن باشی، گر نشاید به دوست ره بردن، شرط یاریست در طلب مردن، گر دست رسد که آستینش گیرم، ورنه بروم بر آستانش. میرم، متعلقان را که نظر در کار او بود و شفقت به روزگار او پندش دادند و بندش نهادند، سودی نکرد، دردا که طبیب صبر میفرماید، به نفس حریس را شکر میباید، آن شنیدستی که شاهدی به نهفت با دل از دست رفتهی می گفت، تا را قطر خیشتن باشد، پیش چشمت قدر من باشد. آوردند که مران پادشهزاده را که مملوح نظر او بود، خبر کردند که جوانی بر سر این میدان مداومت می نماید، خشتب و شیرین زبان، و سخنهای لطیف میگوید و های بدی از او میشنوند و چنین معلوم می شود که دلا شفته است و شوری در سر دارد پسر دانست که دلاویخته اوست و این گرد بلا انگیخته او مرکب به جانب او راند چون دید که نزدیک او عزم دارد بگریست و گفت، آنکس کس که مرا بکشت باز آمد پیش، مانا که درش بسوخت برکشتی خیش، چنداد که ملاتفت کرد و پرسیدش از کجایی و چه نامی و چه دانی در قعر بهر مودت چنان غریب بود که مجال نفس نداشت، اگر خود هفت صبح از بر بخانی که آشفتی، الف بیته ندانی. گفتا، سخنی با من چرا نگویی که هم از حلقه درویشانم، بلکه حلقه به گوش ایشانم؟ آنگه به قوت استیناس محبوب، از میان تلاتم انواج محبت، سربرا و گفت، عجب است با وجودت که وجود من بماند. تو گفتن در آهی و مرا سخن بماند. این بگفت و نعری زد و جان به حق تسلیم کرد. عجب از کشته نباشد به در شیمه دوست. عجب از زنده که چون جان به در آورد سلیم.